مصنوی معنوی مولوی برنامه پنجام طلب کردن امت ایسا علیه السلام از امرا که ولی احد از شما کدام است؟ بعد ماه خلق گفتند ای مهان از امیران کیست بر جایش نشان تا بجای او شناسی مشعمیم دست و دامن را به دست او دهیم چونکه شد خورشید و ما را کرد داغ چاره نبود بر مقامش از چراغ چونکه شد از پیش دیده وصل یار نایب باید از اومان یادگار چونکه گل بگذشت و گلشن شد خراب بوی گل را از کیابم از گلاب چون خدا اندر نیاید در عیان نایب حق این پیغامبران نه غلط گفتم که نایب با منوب گردو پنداری قبیح آید نخوب نه دو باشد تا تویی صورت پرست پیش او یک گشت کس صورت برست چون به صورت بنگری چشم تو دست تو به نورش در نگر کس چشم روست نور هر دو چشم نتوان فرق کرد چون که در نورش نظر انداخت مرد ده چراغ ار حاضر آید در مکان هر یکی باشد به صورت غیر آن فرق نتوان کرد نور هر یکی چون به نورش روی آری بیشکی گر تو سد سیب و سد بشموری صد نماند یک شود چون بفشوری در معانی قسمت و اعداد نیست در معانی تجزیه و افراد نیست اتحاد یار با یاران خوش است پای معنی گیر. صورت سرکش است صورت سرکش گدازان کن برنج تا ببینی زیر او وحدت چو گنج تو نگدازی عنایت های او خود گدازد ای دلم مولای او او نمایت هم به دلها ها خیش را او بدوزد خرقه در را. منبسط بودیم و یک جوهر همه. بی سر و بی پا بودیم آن سر همه. یک گهر بودیم همچون آفتاب. بی گره بودیم و صافی همچون آب. چون به صورت آن نور سره. شد عدد چون سایه های کنگره کنگره ویران کنید از منجنیق تا روت فرق از میان این فریق شرح این را گفتم ای من از مری لیک ترسم تا نلغزد خاطره نکته چون تیغ پولاد است تیز گر نداری تو سپر واپس گریز پیش این الماس بی اسپر میا کز تیغ را نبود حیا زین سبب من تیغ کردم در خلاف، تا که کچخانه نخاند خلاف. آمدیم اندر در تمامی داستان و از وفاداری جمع راستان که پس این پیشوا برخواستند بر مقامش نایب میخواستند. منازعات عمره در ولیعهدی یک امیر از آن امیران پیش رفت پیش آن قوم وفا اندیش رفت گفت اینک نایب آن مرد من نایب عیسی منم در زمان. اینک این تومار برهان من است که نیابت بعد از او آن من است آن امیر دیگر آمد از کمین دعوی او در خلافت بد همین از بغل اونیز توماری نمود تا برآمد هر هر را خشم جهود آن امیران دگر یک یک قطار برکشیده تیغ های آبدار هر یکی را تیغ و ماری بده است در هم افتادند چون پیلان ماست صد هزاران مرد ترسا کشته شد تازه سرهای بریده پاشته شد، خون روان شد، همچو سیل از چپ و راست، کوه کوه اندر هوا زین گرد خواست. تخمهای فتنها کو کشته بود، آفت سرهای ایشان گشته بود، ها بشکست و آن کان مغز داشت، بعد کشتن روح پاک نغز داشت. کشتن و مردن که بر نقش تن است چون انار و سیب را بشکستن است آنچه شیرین است او شد ناردانگ و آن که پوسیده است نبود غیر بانگ آنچه با معنی است خود پیدا شود و آنچه پوسیده است او رسوا شود رو به معنی کش ای صورت پر است که معنی بر تن صورت پر است هم نشین اهل معنی باش تا هم عطا یابی و هم باشی فتا. جان معنی در این تن به خلاف هست همچون تیغ چوبین در غلاف. تا غلاف در بود با قیمت است چون برون شد سوختن را آلت است تیغ چوبین را مبر در کار زار. بنگر اول تا نگردد کار زار. گر بواد چوبین برو دیگر طلب ور بواد الماس پیشا با طرب، تیغ در زرادخانه اولیاست دیدن ایشان شما را کیمیاست جمله دانایان همین گفته همین هست دانا رحمتا للالامین گر انار میخری خندان بخر، تا خنده از دانه و خبر ای مبارک خنده کو از دهان می نماید دل چ در از درج جان نامبارک خنده آن لاله بود که از دهان او سیاهی دل نمود نار خندان باغ را خندان کند صحبت مردانت از مردان کند گر سنگ صخره و مرمر شوی چون به صاحب دل رسی گوهر شوی، مهر پاکان در میان جان نشان، دل مده الا به مهر دلخوشان، کوی نومیدی مراو، امید هاست، سوی تاریکی مراو، خرشید هاست، دل تو را در کوی اهل دل کشد، تن تو را در حبس آب و گل کشد، هین غذای دل بده از هم دلی. راو بجو اقبال را از مقبلی. تعظیم نعت مصطفی علیه السلام که مسکور بود در انجیل بود در انجیل نام مصطفی سر پیغمبران بحر صفا بود ذکر هلیه ها و شکل او بود ذکر غزب و سوم و اکل او طایفه نسرانیان بحر سواب چون رسیدندی بدان نام و خطاب بوسه دادندی بران نام شریف رو نهادندی بر بران وصف لطیف اندر این فتنه که گفتیم آن گروه ایمان من از فتنه بودند و از شکوه، ایمان من از شر امیران و وزیر، در پناه نام احمد مستجیر، نسل ایشان نیز هم بسیار شد، نور احمد ناصر آمد، یار شد، وان گروه دیگر از نسرانیان، نام احمد داشتندی مستحان، مستحان و خار گشتند از فتن از وزیر شوم رای شوم فن هم مخبت دینشان و حکمشان از پیه تو مارهای کشبیان نام احمد اینچونین یاری کند تا که نورش چون نگهداری کند نام احمد چون حصار شد حسین تا چه باشد ذات آن روح الامین حکایت پادشاه جهود دیگر که در حلاک دین عیسی سعی نمود بعد از این خونریز درمان ناپذیر، کندر افتاد از بلای آن وزیر یک شه دیگر ز نسل آن جهود در حلاک قوم عیسی رو نمود گر خبر خواهی از این دیگر خروج سوره برخان و سما زاتل بروج سنت بد کس شه اول بزاد این شه دیگر قدم بر وی نهاد هر که او بنهاد ناخوش سنتی سوی او نفرین رود هر ساعتی نیکوان رفتند و سنتها بماند واز له ایمان ظلم و لعنت ها بماند تا قیامت هر که جنس آن بدان در وجود آید بود رویش بدان. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور در خلایق می رود تا نفخ سور. نیکوان را هست می از خوشاب آن چه میراس است او رسن الکتاب شد نیاز طالبان اربنگری شوله از گوهر پیغمبری شوله با گوهران گردان بود شوله آن جانب رود هم کان بود نور روزن گرد خانه می دود زآنکه خور برجی به برجی می رود هر که را با اختر پیوستگی است مرورا با اختر خود همتگی است طالعاش گر زهره باشد در طرب میل کلی دارد و عشق و طلب ور بود مریخی خون خو، جنگ و بهتان و خصومت جویدو، اخترانند از برای اختران، که احتراق و نس نبود اندران، سایران در آسمانهای دیگر غیر این هفت آسمان معتبر، راسخان در تاب انوار خدا، نی به هم پیوسته، نی از هم جدا، هر که باشد، تاله او زن نجوم، نفس او کفار سوزد در رجوم. خشم مریخی نباشد خشم او منقلب رو، غالب و مغلوب خو. نور غالب ایمن از نقص و غسق در میان عین نور حق. حق فشاندان نور را بر جانها، مقبلان برداشته دامانها، وان نصار نور را وای روی از غیر خدا برتافته هر که را دامان عشق نابده زان نصار نور بی بهره شده جزوها را روی ها سوی کل است بلبلان را عشق با روی گل است گاو را رنگ از برون و مرد را از درون جو رنگ سرخ و زرد را رنگ های نیک از خم صفاست رنگ زشتان از سیاه جفاست به الله نام آن رنگ لطیف لعنت الله بوی این رنگ کسیف آنچه از دریا به دریا می رود از همان جا کامد آنجا می رود از سر که سیلهای تیزرو تیز و از تن ما جان اشقا میز رو آتش کردن پادشاه جهود و بت پهلوی آتش که هرکی این بت را سجود کند از آتش برست آن جهود سگ ببین چه رای کرد پهلوی آتش بت برپای کرد که این بط را سجود دارد برست ور نیارد در دل آتش نشست چون سزای این بط نفس او نداد از بوت نفسش بوت دیگر بزاد مادر بط ها بط نفس شماست زانکه آن بط مار و این بط اجده آهن و سنگ است نفسو. بوت شرار آن شرار از آب میگیرد قرار سنگ آهن زاب کی ساکن شود آدمی با این دو کی ایمن بود بط سیاهابست در کوزه نهان نفس مرآب آب سیه را چشمدان آن بط منهود چون سیل سیاه نفس بطگر چشمه بر آب راه سد را بشکند یک پار سنگ واب چشمه می زهاند بی درنگ سهل باشد نیک سهل سهل دیدن نفس را جهل است جهل صورت نفس اربجویی ای پسر قصه دوزخ بخون با هفت در هر نفس مکر و در هر مکر زان غرقصت فرعون با فرعونیان در خدای موسی و موسا گریز آب ایمان را ز فرعونی مریز دست را اندر و احمت بزن ای برادر واره از بوجه لتن سخن آمدن در میان آتش، و تحریز کردن خلق را در افتادن به آتش یک زنی با تفل آوردان جهود پیش آن بود و آتشان در شوله بود طفل از او در آتش در فگند زن بترسید و دل از ایمان بکند خاص تا او سجده آورد پیش بود بانگ زد آن تفل انی لم امود درا ای مادر اینجا من خوشم گرچه در صورت میانه آتشم چشم بند است آتش از بحر حجاب رحمت است این سر از جیب اندرا مادر ببین برهان حق تا ببینی اشرت خاصان حق اندرا و آب بین آتش مثال از جهان کاتش است آبش مثال اندرا اسرار ابراهیم بین که در آتش یافت سر و یاسمین مرگ می دیدم گه زادن ز تو سخت خوفم بود افتادن ز تو چون بزادم رستم از زندان تنگ در جهان خوش هوای خوب رنگ من جهان را چون رحم دیدم کنون چون در این آتش بدیدم این سکون اندر این آتش بدیدم عالمی، زره زره زر اندرو ای دمی، نک جهان نیست، شکل هست زاد، وان جهان هست شکل بی سباد، اندرا مادر به حق مادری، بین این آذر ندارد آذری، اندرا مادر که اقبال آمده است، اندرا مادر مده دولت زده است، قدرت آن سگ بدیدی، اندرا تا ببینی قدرت و لطف خدا. من ز رحمت می کشانم پای تو، کس خود نیستم پروای تو. اندرا و دیگران را هم بخوان گندراتش شاه بنهاده است خان. اندراید ای مسلمانان همه، غیر از بدین عذاب استان همه، اندرایید ای همه پروانوار اندر این بهره که دارد صد بهار بانگ می زد در میان آن گروه پر همی شد جان خلقان از شکوه خلق خود را بعد از آن بخیشتن می فکندند اندر آتش مرد و زن بی معکل بی کشش از اشق دوست زان که شیرین کردن هر تلخ ازوست تا چنان شد کان اوانان خلق را منع می کردند کاتش در میا آن یهودی شد سیهرو و خجل شد پشیمان زین سبب بیمار دل کندریمان خلق آشقتر شدند در فنای جسم صادقتر شدند مکر شیطان هم در او پیچید شکر دیو هم خود را سیهرو دید شاکر. آن چه می مالید در روی کسان جمع شد در چهره آن ناکس آن آن که درید رید جامع خلق چاست شد دریده آن او ایشان درست موسیقی کجماندن دهان آن مرد که نام محمد را صلی علیه و سلم به آن دهان کش کرد و استخار نام احمد را دهانش کش بماند باز آمد که محمد عاف کن ای تو را الطاف و علم من لدون. من تو را افسوس می کردم ز جهل من بودم افسوس را منصوب و احل چون خدا خواهد که پرده کس درد ملشن در تانه پاکان برد. ور بر خدا خواهد که پوشد عیب کس کم زند در عیب معیوبان نفس. چون خدا خواهد که من یاری کند میل ما را جانب زاری کند. ای خنک که آن گریان اوست. بی همایون دل که آن بریان اوست. آخر هر گریه آخر خنده است مرد آخر بین مبارک بنده است هر کجا آب روان سبزه بود هر کجا اشک روان رحمت شود باش چون دولاب نالان چشم تر تاز صحن جانت بر رویت خزر اشک خواهی رحم کن بر اشک بار رحم خواهی بر ضعیفان رحم آر اتاب کردن آتش را آن پادشاه جهود رو به آتش کرد شاه کیتون خو آن جهان سوز طبیعی خود کو چون نمی سوزی چه شد خاصیتت یا زبخت ما دگر شد نیتت می نبخشایی تو بر آتش برست آن که نپرستد تو را او چون برست هرگز ای آتش تو صبر نیستی چون نسوزی چیست قادر نیستی چشم بند است این عجب یا هوش بند چون نسوزاند چونین شعله بلند جادویی کردد کسی یا سیمیاست یا خلاف طبع تو از بخت ماست گفت آتش من همانم عایشمند اندر را تا تو ببینی تا به من طبع من دیگر نگشت و ان سرم تیغ حقم هم به دستور برم بر در خرگه سگان ترکمان چاپلوسی کرده پیش مهمان ور به خرگه بگذرد بیگانه رو حمله بیند از سگان شیرانه او من ز سک کم نیستم در بندگی، کم ز ترکی نیست حق در زندگی. آتش طبعت اگر غمگین کند، سوزش از امر ملیک دین کند. آتش طبعت اگر شادی دهد، اندرو شادی ملیک دین نهد. چونکه غم بینی تو استغفار کن، غم به امر خالق آمد، کار کن چون بخواهد عین غم شادی شود عین بند پای آزادی شود باد و خاک و آب و آتش بندند با من و تو مرده با حق زندند پیش حق آتش همیشه در قیام همچو آشق روز و شب پیچان مدام سنگ بر آهن زنی بیرون جهد هم به امر حق قدم بیرون نهد. آهن و سنگ هوا بر هم مزن. کین می زایند همچون مرد و زن. سنگ و آهن خود سبب آمد ولیک تو به بالاتر نگر ای مرد نیک. کین سبب را آن سبب آورد پیش. بی سبب که شد سبب هرگز خیش. اون سبب ها کن بیا را رهبرند آن سبب ها زین سبب ها برترند این سبب را آن سبب عامل کند باز گاهی بیبر و عاطل کند این سبب را محرم آمد ها، و آن سبب ها راست محرم انبیا این سبب چه بود به تازی گو رسن در این چه این رسن آمد به فن گردش چرخه رسن را علت است. چرخه گردان را ندیدن زلت است. این رسنهای سببها در جهان هانهان زین چرخ سرگردان مدان. تا نمانی صفر و سرگردان چو چرخ تا نسوزی تو زبی مغزی چو مرخ. باد آتش می شود از امر حق. هر دو سرمست آمدند، از خمر حق، آب حلم و آتش خشم ای پسر، همزه حق بینی چو بکشایی بسر، گر نبودی واقف از حق جان باد، فرق کی کردی میان قوم آد، هود گرد مؤمنان خطی کشید نرم می شد باد کانجا می رسید، هر که بیرون بود زان خط، جمله را پاره پاره می در هوا همچنین شیبان رای می کشید گرد بر گرد رمه خط پدید چون به جمعه می و وقت نماز تا نیارد ترگ ترکتاز هیچ گرگی در نرفتی اندران گوسفندی هم نگشتی زان نشان باد حرس گرگو هرس گوزفند، دایره مرد خدا را بود بند، همچنین باد عجل با و نرمخش همچون نصیم گلستان، آتش ابراهیم را دندان نزد، چون گزیده حق بود، چونش گزد، زاتش شهوت نسوزد اهل دین، باقیان را برده تا قعر زمین، موج دریا چون به امر حق بتاخت، اهل موسا را زقبتی واشناخت. خاک قارون را چو فرمان در رسید با و تختش به قعر خود کشید. آب و گل چون از دم عیسی چرید، و پر بکشاد، مرغی شد، پرید. هست تسبیحت بخار آب و گل. مرغ جنت شد ز نفخ صدق دل، کوه تور از نور موسا شد برقص صوفی کامل شد و رست و ز چه عجب گر کوه صوفی شد عزیز، جسم موسا از کلوخی بود نیز،